بسم الله الرحمن الرحيم فصل اللقطة فصل بعدي در ربطة با لقطة هست ماليس كه از مالكش قم مشه هلو مياه يا ازش غافل مشه به هر طريق به هر جهت یا انرو فراموش میکنه يا از ميافته به هر جهت خلاصه و اذا وجد لقطة في موات او طريق فلهو اخذها او ترکوها و زمانی, یا و زمانی که یافت شخص چیزی پیدا شده را این چیزی که گم بود, بود پیداش کرد در زمینی مرده و بی در زمینی مرده اگر میخوایم لفظی معنیش کنیم او طریق یا در راه میخوایم مقاصدی معناش کنیم و زمانی که یافت چیز ای را پیدا کرد در جایی که احتمال ضایع شدنش هست فلهو اخذها او ترکها اختیار دارد که آن را بردارد یا ترکش کند رهایش کند برش ندارد و اخذها اولا من ترکها ان کان على من القيام بها ولی برداشتنش اولاتر هست از ترک کردنش اگر مطمئن بود که میتواند اون دستوراتی رو که شرع گفته اجراشون بکنه در رابطه با گم شده ها اگر میدونست که اون حقوقی رو که شریعت تعین کنه برای برای کرده برای یک چیز گم شده و پیدا شده تونست اطمینان داره اولا همین هست که اونو بر بداره اگر میدانست که خیانت نمی کند در آن چیزی که پیداش کرده اون گم شدهی که پیداش کرده مستحب همین است که بردارد در سراج اومده برخی گفتن واجب است و اذا اخذها و زمانی که اون چیز گم شده رو که پیدا شده پیداش کرده برش داشت گم شده معنیش بهتره و زمانی که آن رو برداشت واجب است ان یعرف ستت اشیا شیش چیز رو از اون بشناسه بله. یعنی این ویژگی رو در ذهن داشته باشه برای روزی که صاحبش پیدا شد طوری نباشد که هر کسی ادعا کرد با ادعای صرف اونو بر بداره نه این ویژگی رو بگه وعاها ظرفش رو و عفاظها سرپوش اون ظرفو و وکاها اون نخی رو اون ریسمانی رو اون بندی رو که ظرف با اون بسته شده است و جنسها جنس اون چیز گم شده را تلاست نقره هست چیز دیگرست و عددها تعدادشون رو و وزنها و وزن اون چیزها رو اگر وزنی هستند و احفظوها فی حرزی مثلی و این چیز گم شده را که پیداش کرده حفظش کند نگهداریش کند در جای مناسبش در جایی که اون اون چیز در حفظ میشه خب اگه گوسفند در جای خاص خودشو داره اگر فرزن لباس جای خودش رو داره اگر تلاست جای مناسب خودش داره میگه و يحفظها في حرز مثلها و محافظت میکنه نگهداری میکنه از اون چیزه گم شده در جای خاصش در جای مناسب خودش اصلاً طلای رو پیدا کرده دیگه نبره تو تویله گوسفندی رو پیدا کرده خب در جای خاص خودش میگه نگهداریش میکنه اون جایی که اون چیز مثل اون چیز چی جای نگهداری داری میشه؟ اینو هم اونجا نگهداری میکنه ثم اعراد تعمللق ها سپس اگر خواست به ملکیت خودش در بیاره استفادهش بکنه اون چیزو چی کار میکنه؟ اعرف حسنتا على ابواب المساجد وفل الموض الذي وجدهافیی تعریف میکنه اون رو اعلام میکنه اون رو یک سال بر در مساجد و در جایی که اون را در جاهایی که اون را یافته است اگر مقاصدی معنیش کنیم و اعلام میکند اون رو یک سال در جاهای شلوق مخصوصا جاهای شلوغی که در اون اطراف یافت شده اون جایی که یافت شده و در جاهای شلوغ اون اطراف اونجا. جا فا ایل صاحبها اگر بعد از یک سال صاحبش را نیافت له ان یتملکها به شرط اختیار دارد که مالکش بشه یا به ملکیت خودش در بیاره مالکش که نمیشه آه. زور استفادهش بکنه منظور اصطلاح دقیق تر که بخوایم به کار ببریم به شرط زمانت مالک کسی دیگه هست میخواد این مالکش الان بشه به ملکیت خودش در بیاره میتونه بعد از یک سال اعلام کردن این کارو بکنه ولی به شرط زمانت یعنی روزی صاحبش پیدا شد زامن باشه. اگر مثلی بود مثلشو میده یا قیمتشو میده به شرط زمانت در هر حال و لقطتو ال ارات ا پس به شرط زمانتش اینجا میگیم چون جلوتر تفصیل شو بیان میکنه و لقطت تو اضرب میگه لقطه، چیز گم شده چیز گم شده دیگران که شخص پیدا میکنه بر چار نو هست احدها ما يبقى على الدوام فهذا حکمهو نوع اول احدها نوع اول آن آن است که برای همیشه باقی میموند خراب نمیشه باقی میمونه همیشه فهذا حکمه همین چیزی که بیان شد حکمش هست یعنی تا یک سال اونو در اون جاها معرفی میکنه اعلامش میکنه صاحبش پیدا شد شد نشد بعد از یک سال میتونه استفادهش کنه به شرط زمانت والثانی ما لا یبقا نوع دوم لقطه اونی است که باقی نمیماند که طعام الرطب مانند خوردنی تر مثل گرژه آه مثل عمب. این باقی نمیمونه فهو مخیر بین اکلیه و غرمه اینجا اختیار داره که اونو بخوره و غرامتش رو بده او بيعه و حفظ زمنه یا بفروشدش و پولش رو نگه بده بین این دو چیز اختیار داره ولی نگذاره که خراب میشه. خب البته در دنیای ما ما چیزایی که مثلا در قدیمها ها داریشون ممکن نبود الان میبینید مثلا ممکن است. البته نیاز به هزینه دارند که در گروه جلوترش میخونیم. مثل حیواناتی که اون زمان مثلا هزینه داشتن چه حکمی رو داشتند؟ اگر میخواییم فتوه جدیدی اون چیزی رو که قدیما باقی نمیموند ولی الان با میشه باقیش داشت خو مثل مثلا میوجهتی که تو سردخوره برده میشند این البته میگذاریم که مجتهدین فتوه بدن ما عباره های کتاب هم میکنیم پس دو پس طبق کتاب آنچه که باقی نمیماند آنند خوردنی تر اختیار دارد بین خوردنش و بین قرامتش یا فروشش و حفظ کردن پولش حالا شاید این مثالی که من زدم گرجه مثال خوبی نباشد یعنی جزو نوع سوم باشد ولی در هر صورت اون چیزی که باقی نمیماند اینجوری ترجمهش میکنیم بهتره و الثالث ما يبقى بعلاج نوع سقومون است که با معالجه باقی میماند با فنفوت با روش باقی میماند کر رطبی مانند خرمای تازه فیفعلو المصلحته در همچنین چیزی که باقی میتونه بمانه با علاج با معالجه اینجا هم فیفعلو من منبقه و حفظ ثمنه او تجفیفه و حفظه اینجا مصلحتو انجام میده اگر مصلحتش در این بود که بفروش اونو و پولش رو حفظ کنه این کارو میکنه او تجفیفه و حفظ، یا اینکه اونو خشک بکنه و نگهش بداره مسلحت در چی بود؟ اون کار انجام میده. البته الان راه دیگه هم اومده. مثلا توی سردخونه‌ها ها ببره ولی این هزینه داره. شما نوع رو بخونیم اونجا میتونید روش حرف بزد و را به او ما یحتاجو الى نفقه. نوع چارمونه که نیاز به نفقه هست. که حیوان مانند حیوان. و خیلی از میجاتخورردنی هایی که قدیم ها یا از نوی دوم بوده یا از نصف و میتونیم از نوع چارشون قرار بدیم الان یعنی میشه ازشون محافظ میشه اونا رو نگه داشت ولی نیاز به نفقه دارد نیاز به پول سردخانه و نمیدونم فلان چیز رو دارد میشه قیاس قشنگ از این شماره چار گرفت چون قیاس یکی از ادلهشرقیی است والرابع او ما یحتاج و الانفقتی نوی چارم اون لقطه است که نیاز به خرجی داره نیاز به غذا داره نیاز به خرج داره که الحیوان حزینه داره نفقه رو حزینه میکنیم که هم شامل حیوان بشه هم شامل چیزای دیگه که در دنیای معاصر میشه ازشون محافظت کرد که قدیما نمیشد پس نوی چارم ما و ان که نیاز به نفقه دارد مانند حیوان و هو دربان و این حیوان خودش بر میشه حیوان لایم تنو به نفسه حیوانی که نمیتونه از خودش دفاع بکنه فهو مخیر بین اكله نمیتونه از خودش دفاع بکنه نمیتونه خودشو از اس... نمیتونه خودشو از خطرات نجات بده نمیتونه دفاع بکنه یا از خطرات خودشو نجات بده فهو مخیرون بین اکلیه و غرمی ثمنه اینجا اختیار دارد شخص پیدا کننده بین این که اونو بخوره و غرامت ثمنشو بده او ترکی و تطوعی و به الانفاقی اله یعنی اونو ترک بکنه منظور نخوردش و تطوعان روش خرج بکنه نفقشو تطوعان بده خرج اون حیوان رو تطوعان بده از طرف خودش بخاطر سواب اونو خرج بده او بایه و حفظ ثمنه یا اینکه اونو بفروشه و پولش رو محفوظ کنه پس اختیار دارد که اونو بخوره ثمنش رو بده یا اونو بفروشه یا اونو نگه داره و تتوان انفاقش رو بده یا اونو بفروشه و پولش رو محفوظ نگه دارد دو و حیوانون یمتنعو به نفسه حیوانی که از خودش میتونه دفاع بکنه حالا یا زور داره یا میتونه فرار بکنه کسی نمیتونه اونو بگیره در هر صورت یعنی از خطرات محفوظه هدفی این پس حیوانی که میتونه از خودش دفاع بکنه فان این وجه دهو في اگر شخص همچنین حیوانی رو در صحرا یافت ترکه ولش میکنه کاری بشنه نداره. و این وجده فی الحضار اما اگر اون رو در شعرها یافت در آبادیها یافت فهو مخیران بین الثلق بین الثلاثه اینجا باسم بین اون سه چیز قبلی اختیار داره یعنی بین خوردن و غرامت سمن یا نگهداری و تتوان نفقشو بده خرجش بده حزینه شو بکشه یا اینکه اونو بفروشه و سمنش رو حفظ کنه بین اون سه چیز قبلی که قبلا در نوع اول بیان کردیم فصل القیتو فصل بعدی در رابطه با لقیت هست